اللهم صل على فاطنة وأبيها أبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباعثه طب معصومه بحث سیاهدانه حبت و سودا و فواعد سیاهدانه در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها اگر کسی ازدواج قانونی و شرعی کرده و قوای باه او ضعیف شده و یا دوچاره بیماری خستگی جنسی هست اگر سیاهدان رو با روغن زیتون بخورد یا جوشانده سیاهدانه در روغن زیتون باشد و روزی یک قاشق مرب بخوری از او مصرف کنه جهت تقویت قوه باه سریع الاثر است اگر کسی مشکل انتشاری دارد علاوه بر آب زردک یا حویج زرد یا حویج رسمی که قال الصادق علی سلام یقیم الذکر میتونه از روغن سیاه دانه استفاده کنه و به آنه و اسباب اساسیش اینها مثل پماد اینها ماساژ بده اینجا نعوزش تقویت میشه تو سلام که خصوصیش تو بحث زندگی خصوصی خانواده کم نمیاره که خانومش معطله بشه و از دستش به قاضی شاره در دادگاه خاص شکایت کنه این هم مانه چکار دنیا اگر کسی بیماری رعشه دارد یعنی لرزش غیر اختیاری داره روغن سیاه دانه ماساج بده مثلا به دست و پایی که لرزش غیر اختیاری داره رعشه رعشش خوب میشه اما تو خوراکی برای درمان رعشه خوردن آلو بخارا هفت عدد در 24 سن تو دهن نگه داره تا آبشه دوم خوردن انار شیرین مثلا یک استکان آب انار تا یک لیوان خوردن آب انار شیرین حالا یک کاتالیزار مجاورتی هم بگذار که سرعت به بهبودی ببخشی و اون زرش که خامه یک قاشق پلو خوری درمان بیماری رعشه میشه پسشکی جدید دارو نداره از حیث ماساژ درمانی و پوماد و زماد روغن سیاهدانه خالص یعنی سیاه‌دانه‌ای که تو روغن زیتون 20 دقیقه یا نیم ساعت بجوشه بعد با اون دست یا پایی که لرزش غیر اختیاری داره با اون ماساژ بدیم اگر کسی ضعف عضلات دارد یا استرخاء العضل یا اینکه فلجی یا شبه فلجی دارد میتونه با روغن سیاه دونه ای که در روغن زیتون جوشانده شده ماساژ بده در درمان شبه فلجی ها و سستی و ارخا اعواء بدن مفیده یک بار دیگه میخواییم بچه کنین. یعنی سیاه دانه در روغن کنجد نه حواشیم یعنی سیاه دانه در روغن کنجد جوشانده شود بعد آبش صاف می‌کنی سرد که شد با قطره چکن در بینی میچکنی و ته حل دوازده قطره دوازه قطره دوازه قطره هم ته افرادی که زمینگیره یا فلجی یا لمسی یا شبه فلجی هم کم کم پا میشن میشین، کم کم پا میشن را میرن پس توشانده سیاه دانه در روغن کنجد. به صورت پومات و زمات و ماساج روغن سیاهدانه که سیاهدانه در روغن زیتون جوشانده شده اگر کسانی بیحسی موضعی تو دست یا پا دارند مشکل عصبی در دست و پا دارند و یا اینکه خونمردگی خونمردگی زیر پوست دارند اینجا ماساژ با روغن سیاه دانه که در روغن زیتون جوشانده شد اگر کسانی سر و صورتشون موهایش سریعتر از سن شناسنامه پیر شده یعنی دچار پیری فیزیولوژی مو شده با اینکه سنش کم برای پیشگیری و درمان از سفید شدن موی سر وریش، ماساج دادن با روغن زیتونی که سیاه دانه در او جوشانده شده پس جوشانده سیاه دانه در روغن زیتون هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه سفید شدن موی سروریش رو تو خوراکی ها سیاه روزی سعدت عدد بخوریم. اونم کنار این حاشیه بزن بعد گفتیم اثر بخشیش بهتر باشه این سه حلیله سیاه رو تو روغن زیتون نگه داری یکم بخیسه بعد عین کپسول قورتش بده تو 24 ساعت یک بار سه فایده ثابت شده داره حلیله سیاه تو روغن زیتون یکی ملین مزاج یکی سنهای زیر پنجاه سال بعضی کتابا ها میگه سنهای زیر 60 سال رنگ دانه های مو فولیکول های مو در میگرده سوم فائدش چیه کمک میکنه به تقویت حافظت و پیشگیری میکنه از نسیان حالا قبل از این که با این روغن سیاه دونه ماساژ بیدیم موهای سر رو گیشتو قبلش بشور موها رو باز این کتاب حاشیه بزن به صورت مطلق گفته با صابون گیاهی اما بهترینش کدومه؟ با صابون گل ختمی با صابون گل ختمی بشور هم ضد جوش های قرور جوانی و جوش های اکنه و جوش های زونا و جوش های قارچی و التحابیه و هم جای لک جوش ها نمونه اونجا گفتیم بعدش روغن کشنه که روغن قصده بزن حالا مبارسه اون تو سیاه شدن موهای سر و ریشه میگیم روغن سیاه خالص بزن نیمونم حواشیم اگر کسی روغن سیاه را با شش روغن دیگر مخلوط کند اگر کسی روغن سیاه دانه را با شش روغن دیگر مخلوط کند مثل روغن حنا روغن مرد روغن سدر روغن گزنه، روغن فندق روغن بادام اگر کسی روغن سیاه دانه را با این شش روغن مخلوط کنه به سرش بزنه جهت رفع ریزش بیش از اندازه مو مفیده و سبب تقریت پیاز موه که قبلا گفتیم مدل ضعیفش روغن بادام تلخ، مدل قوی ترش، روغن سیاهدانه، قویتر از همه روغن کندوش کندوش از هندوستان. بعد پود میکنیم معامنا، تو روغن زیتون می جشونی. روغن کندوش از همه قوی تره برای تقویت ساقه مو و رشد مو حالا اینجا یک روغن مرکب بود از هفت روغن چند تا که مردم کردن مبتلا به عمومی داخل خارج کشوره اینا هم هم توضیح بدم چون بعضیاش پزشکی جدید دارو نداره تو بعضی نسخه هم سیاه دانه هم جزء نسخه هست. حالا یه چند تا سال بگم. این چند تاش یکم گریز از مرکزه. جمله معتبره. پارانتز. تو اپارتمان های مردم و خونه های آپارتمانی بعضیا ها گیاه دیفن تیفن باخیه دارن. اگر کسی برگ یا ساقه یا گل این گیاه رو بخوره یا شیرابه این گیاه رو بخوره باعث ورم گلو و دهان و باعث خفگی شخص می شود اگر شیرابه شو یه مختصری بخوره یا دستش آلوده بوده تو دهنش بذاره بخوره دهانش قفل میشه میبند حالا اگر کسی مبتلا به این شد بچه کوچیک داره یا بازیگوش از این چیزها هم توی تزینات گلدونیش بوده تو خانه و خانواده حالا رو سریع عمل کن ضد اینا چیه؟ دو چیز یکی محلول آب نمک دوم محلول آب سرکه سریع تو درن بگرد و نه کنه تا همه این عبه بره یادتون باشی گفتم علکی علکی کسی نمیره بعضی هستند درد روده دارن به نوع شدید درد روده دارن به نوع شدید با اینکه که ازدیاد گاز معده و قرقره های شکمی و یا سرسوزه معده هارت و یا ریفلاکس برگشت اسید معده ندارن اما درد های روده ای شدید دارن یک پرهیز داره باید میوه موز نخورن میوه موز نخورن اما داروش هر روز صبح یک قاشق مربو روغن گاب روغن زرد زرد اصان کلمشای کم کم بخوره و هر شب یک قاشق مربو خوری زیره سیاه زیره سیاه بخوره دردهای رودعی مریض خوب میشه اگر کسی سل قدد لمفاوی داره به اصطلاح ما تو روایات بیماری خنازیر دارد بیماری خنازیر دارد یا سل قدد لمفاوی استخان دارد همراه با آبسه که به کندی پیشرفت می کند یک پرهیز داره نباید ثامه نباید سیر بخوره چه خود سیر چه موسیر نباید سیر بخوره درمانش چیه؟ دو چیزه یکی خوردن خردل یکی خوردن ایرسا با سینه. ایر ایرسا این دوتا درمان سل، قدد لمفاوی استخانه یا بیماری خنازیر اگر کسی درد بواسیر دارد یا بیماری همورایید توفاله های چای عادی رو دور نریست توفاله چای دم کرده که چای آن مصرف شده بر محل بواسیر زمات کنید یعنی بذاریم باشه شبتا درد محل بواسیر میشه این به جای تماد شیمیایی همرایید همچنین اگر روغن خیار درست کنم یعنی خیار بوته رو در روغن سیاه دانه یا روغن زیتون و مانند او مثل روغن کنجه اگر درد بواسیر داره و خارش مقعدی حالا این روغن خیار تو روغن کشنه که روغن قسط اگر درد مفعدی داره تو با ترون یا بیرون زدگی بیرون زدگی بخشی از رود رود آنال یا به اصطلاح قدیمیا پیزیش بیرون زده اینجا روغن خیار به اضافه روغن پوست میوه انار روغن پوسته میوه انار یا اینکه تو جوشانده پوسته انار بشینه جمع میشه رود انار سر جاش برمی‌گاد گرفتید مؤمنان چی شد یه 20 دقیقه تایی محلول بشه برای دردشان که این کلمه رو گفتیم روزی سه معتب روغن خیار بماله و همچنین سبزی تره با نهار و شامش بخوره که بواسیر خونی همراید خونی به نوع داخلی و خارجیشم خوب بشه چون مبتلا به اجتماع بود یکم توضیح دارم چون تو روایات شیعه داره یکی از علائم عمومی مردم دنیا در آخر زمان اینه که قالبا مبتلا به یوبوست و همچنین مبتلا به بیماری بواسیرم مبتلا به بیماری یوبوسف و همچنین مبتلا به بیماری بواسیرم رضا مؤمن اگر بواسیر شخص خونی بود هر روز صبح و شب یک قاشق چایخوری پودر سماق بخوره با نهارش یه مش تره بخوره با شامش یک ماش سبزی خرفه بخوره اینجا بواسیر خونیش خوب میشه همرایید خونی خوب میشه دیگه نمیخواد بره لاپاراسکوپی کنه یا کلوناسکوپی کنه یا بیوسپی کنه نمونه برداری یا یه مدت شیمی درمانی کنه یه عدد اطفال قربی شرقی لازم نیست از سه روز درد بواسیر خونی خوب میشه به دو هفته دیگه بواسیر خونی مات میشه تو جیره قضایش از این به بعد با نهار شامش تره و سبزی خرفه باشه فصلایی که سبزی خورفه نبود یک قاشق مربو خوری تخم خورفه به همراه غذا بخوره هم کاهش قند خونه هم زد بواسیر خونیه اگر همراییدش به نوع بادی بود یعنی بین مقعد و پوست کنار مقعد ورم میکرد مثل بادکنک داروش خوردنه یکی دو خوش انگور با حسه به یعنی که تو مخلود کن همزن هم, هم بزنم امنا یک لیوان آب انگور با له شدهش بخوره از روز سوم دردش ساکت به دو هفته بواسیر بادی خوب میشه از این به بعد مواظب باشه چیزایی که یوبوسک میاره نخوره مثل شکر مثل سینه مرغ، مثل هسته انار مثل نان سفید آرد سفید کک سفید نون ساندویجین اینها رو نخوره نوشابه های گازدار یا کم تحرکی یا اضافه غزش رو درمان کنه روزی نیم ساعت تا یک ساعت راه بره یکی از علل ایجاد بواسیر و یا یوگوست مزمن و همچنین فتخ های شکمی یا زیر شکمی اضافه وزن و کم تحرکیه روزی نیم ساعت الا یک ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشیم قسم سوم گایی بواسیر یا همراییدش دگمهیه یا ساجمهیه داروشیه زنیان با اصل میخوره بسید این که چاقی شکمیش خوب بشه زنیان با مغز گردو میخوره تا بواسیره دگمه و ساجمهیش خوب بشه مثلا یه قاشق چای خوری پودر زنیان با دو مغز گردو یا نصف استکان عرق زنیان با دو تا مغز گردو درسته مغز گردو درسته میذاره تو دهنش یه قلاب عرق زنیان دوتاشو با هم خوب میجوه بد قرط میده قضیه مغزه گردو درسته میذاره تو دهنش یه قلاو دیگه عرق زنیان دو تایشو با هم خوب میچوبه قورت میده تو آش به جن امام رضا فرموده که امام رضا تو ساله ذهبیه اینجا بواسیره دوغمی و واساجمیت خوب میشه یبوست مزمنه هم خوب میشه اگر کسی خیلی لاغره و همچنین کمخونه که الان در سطح داخل و خارج کشور این دوتا زیاد شده به خاطر گرانی، تورم، سوء تغذیه و ازدواج دیرهنگام چند تا بدبختی پیش اومده یکی زریب جرم و دزدی بالا رفته یکی زریب ناباروری زیاد شده بعد از ازدواج قانونی و شرعی یکی هم زریب کمخونی و لاغری زیاد شده نیازی به گرفتن رژیم غذایی نیست چیزی نهاره که بخوره سوء تغذیه شدیده حال اگر کسی مثلا بچهش خیلی لاغره و همچنین کم خونی داره یکی از قویترین داروها یونجه یا عرق یونجس. حتی اگر گلوبولهای های سفید خونش لنفوسیت ها کم باشه درصد گلوبول های سفید خونش هم بالا میبره حاجه هم فقر آهن دارم هم عضلات دست و پام ضعیفه به نوع ازولات ارادی یعنی هم آنمی فقر آهن دارم هم بیماری دیستروفی, دیستروفی. یعنی زرف ارادی دارم هم ریزش موی سرم شدیده و هم زرد و و لاغرم چوب کبریتی میشه همین این با هم درما میشه بله بله که میشه شیره خورما به اضافه عرق یونجه مثلا یک لیوان شیره خورماست با نصف استکان عرق یونجه این رو با هم مخلوط کنیم تو 24 ساعت مومن هم ادامه بده چند روز روزی 3 قاشق پلو از این مخلوط محلول بخوره قبرق این هم چون مبتلا به هم. عمومی بود در سطح داخل و خارج کشور یکی دیگه از فواعد عرق یونجه و یا جوشانده و دم کرده یونجه چیه قابل از افرادی که دلنگون و حواسشون پرته فریب نقشه صهیونیست بین الملل خوردن و گروه های سلفی و وحابی هم به خورد اینا دادن و او چیه مواد افیونی یا قرص های روان برگردان ای دیگه معتاد دلنگون فوتش میافته حالا می‌تونی این رو نجات بدی لقلقی لخ را تلو تلو نخوره بله بله, بله بله بله یکی از داروهای بسیار مهم در ترک اعتیاد معتادان همین عرق ینجس یا جوشانده یونجه یا دم کرده یونجه چرا؟ چون ثبت میشه که در اشخاص معتاد حالت تهوع ایجاد میشه دیگه حالش از هر ماده افیونی به هم میخواه زرنگ باش پدر و مادر و بقیه اقلاع جامعه شخص معتادی که مثلا دیدی سلام علیکم کیفی اخچه دی گود مورنینگ گود good afternoon thank you وریما چی یکم بایش دوست شدی؟ حالا دوست واقعیش بیا این زمان چه قرد دلنگونی؟ چرا پکری؟ خوش عواظ نداری؟ چورک میزنی؟ بیا این دارو بخواد کف این هم میخوره شما داری به نفش کار میکنی؟ خب؟ عرق یونجه بهش میدی؟ یا جوشانده یونجه؟ یا دم کرده یونجه؟ این حالت تعبوش میگیره؟ تمام او آتاشقالایی که خورده میاره بالا شما به نفش کار کردی. چند نوبت که از این چیزا بخوردش می دیدیم دیگه رده اعتیاد نمی ره این هم چون به داخل خارج کشور بود یه تذکری دادیم اگر کسی سرطان التهابی دارد داروی ضعیفش برگ دارواشه داروی قویترش برگ گل بهار نارنج یا خود گل بهار نارنج و از همه قویتر گیاه مخلصه است در جلوگیری و پیشرفت های سرطانی بسیار موثره مخصوصاً کسانی که سرطان التهابی دارند چون که این عامل سرطان در جهان دومین عامل مرگ و میره قابل از اصول طب داخلی همچنین طب داخلی نلسون هم فیزیولوژی گایتان هم روشه تشخیص بیماریا هارارد فریدمن دومین عامل مرگمیر در سطح جهان عامل سرطانه قابله از همه مسلمونای عاقل و شیعان عشری میخوای این دومین عامل رو از صحنه اجتماعی حصف کنی؟ بله بله با عنوان پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت سلولای سرطانی این ستا رو تو افرادی که مشکوک به هر نوع سرطان هستن تو جیره قضاییشون بذار از هر کدوم تو 24 ساعت یک قاشق چای خوری پودرش که میریزی تو استکان روش آبجوش میریزی پنج دیگه دیگه سرط میکنی بعد با اصل کوهی هم بزن بخور یه بار دیگه میگم برگ دارواش این ضعیفش دوم گل خار مریم سوم گیاه مخلصه حجا اگر سلطان خون داشتم چیکار کنم گل همیشه بهار یا بقول خارجی ا کالندولا دوم شلقم به اصدار روایات سلجم الفت این دوتا هم درمان سرطان خون میکنه. اینا مبتلابه بود یک کم گفتن اگر کسی مصحل قوی میخواد به نوع داروی مرکبه چند مدل گفتم این یه مدل جدید خدا رحمت کنه مرحوم حاجقا یگانه عطار معروف اطراف فلکی آب بود و خدا رحمت کنه پدر و پسر را. آقای اکبرزاده و پسر گرامیش حضرت آیت الله شیخ محمود اکبرزاده که متخصص علم حدیث و فقه تاریخ و عدب از چیه عصانی بود؟ تو دار و حرمم نماز میخوند نمازشم هم از همه سریتر ظاهرشی بیدیدی خیال میکرد یه آدم عادیه سه سال و نیم شاگرد ایشون بودن ایشون بزرگواری میکرد ما رو راه میداد منزلشون احادیث از شیعه و اهل تصنون و با توضیحات کافی و وافی که می فرمودن می حالا منظور هم پدر مرحوم آیت الله اکبرزاده هم پدر این یگانه ها که یکیشون هم دکتره حالا این عطار معروفی این دوتا عطار معروف فلکی آب بودن اون زمانه قدیم مسهل قوی به نوع داروی مرکبه این یادگاری از اونا بنویس حلیله سیاه حلیله سیاه به اضافه پوست حلیله زرد به اضافه ملک باد به اضافه ملک ازرق بازه زنبوری به اضافه گل سرخ محمدی به اضافه مستکی رومی مستکی رومی شما رو به نسبت مساوی فود میکنین مخلوط میکنین هر روز یک قاشق بخوری از این مخلوط با یه لیوان آب بخورید اگر کسی با تو که داخل خواهد کشور زیاده خیلی میان سآل میکن اگر کسی دخترش یا عروسش یا خانومش یا یکی از فامیلای زنش یا همکارای زنش مثلا تو اداره اینا هستن اگر کیست تختان دارد داروش چیه؟ یه بار قرص گیاهیه یا سمینه یک بار گل استخددوسه یک بار هم گل خارمریم حالا سه چیز بود دیگه هر هیست ساعت یک بخوره یکی قرص گیاهی یاسمین دوم گل استخدوس سوم گل خارمریم کیست های تختان کیست های رحمی و ماننده چی میشه امو خوب میشه یکی از بیماری هایی که مطرحه تحلیل سلول های عصبیه یعنی بیماری آی این شخص مریض به سختی از جاش بلند میشه بالا رفتن از پله ها براش مشكله دستهاش قدرت نداره گرچه راه رفتنش هم خوبه در صورت عصبانی شدن بیماریش تشدید میشه و تحلیل سلولای عصبیش هم پیشرفته میشه حالا چیکار کنیم به درمان یا کمک به درمان واقعی بیماری SMA که تحلیل سلولای عصبی سبحان شیرعسل یا شیرخورما یا حلیم گندم در شبان روز دو مرتبه یعنی هر دوازده ساعت یک قاشق پلوخوری از شیره استفاده کنه شیره خرما شیره انگور شیره توت که مخلوط با همه به نسبت مساوی درمان ضعف عمومی شام 16 چیزه یکی انگور انگیر موز موز رسیده سیب درختی رسیده شیرین گلابی انار شیرین عدست ولی عدس به شرطی که بیماری بواسیر نداشته باشه که تو روایت شیعه این قید رو میاره برگ چقوندر اسفناج با پیاز بخوره بدون ماست چون مسمومیت میاره اسفناج با ماست بخوری ده جو ما اششعیر یازده بلود دوازده گندم بودادم سیزده توت فرنگی چارده پیاز با آبگوش روزی دو لیوان آب زردک، هویج رسمی بخوره، جذر بخوره. عسل غلیظ شده هم بخوره زد. 16 چیزهای ترش و تند تیز نخوره، حالش بدتر میشه. چیزهایی هم که عضلاتش رو شلتر میکنه نخوره. مثل نارنگی، مثل شکلات، مثل کاکائو، مثل نسکافه، مثل قهوه اینا رو نخوره، عضلاتش شلتر میشه. شب‌ها میتونه کته برنج رو با پنیر و پرتقال بخوره حالا تو بحث ما یک دارو دیگه هم هست داروی جامعه امام رضا علیه السلام رو با مرزنجوش بخوره داروی جامعه امام رضا علیه السلام رو با مرزنجوش بخوره خیلی فواهد داره یکی جمعه تو بحث درمان بیماری اس ام ای مؤثره همچنین جوشانده سیاهدانه در روغن کنجد که تو بینی و تحلقش بچه کنه هر کدوم دوازده قطره که تو بحث لمسیه و فلجیه و کمتحرکینا قبلا گفتن پس این بیماری کمیاب بود به نام اس ام ای اگر کسی پرکاری قده پاراتیروید دارد این تیزی رو گردن جای حنجره عدد هفت بگذار یا به اسطلاح تخصصی قدر ای خب اینجا جای تیرویده اما پشت این قده تیروید قدد پاراتیروید قرار دارد، شبیه نخود کوچولو. قدد پاراتیروید قرار دارد. اگر این قدد پرکار بشه کلسیوم بدن شخص بالا میرود پزشکی جدید در اینجا داروی خاصی که درمانه به موقع کنه نداره حالا یادداشت بفرمایید. درمان درمانه پرکاری قده پاراتیرائید این بیماری محصول ازدیاد ترشوه هرمونی به نام پاراتورمون پاراتورمون می باشد که متابولیسم کلسیوم بدن را کنترل می کند درمان عمومی صبحها ها اصل رقیق شده با آب بخوره یک لیوان آب یه قاشق پلوخوری اصل کوی توش هم میزنی می وسط روز یک لیوان آب سیبش رو که با پوستش آب گرفته اینه وسط روز میخوره شب ها قبل از خوابش یک قاشق مربخوری سیاه دونه با اصل میجوه میخوره یادتونه گفتم یکی از عوارض سوء این بیماری پاراتیروید پرکاری پاراتیروید اینه که کلسیوم بدنش بالا میره. وقتی تعادل کلسیوم در بدن به هم میریزا حافظه شخص ضعیف میشه شود. ناکارآمدیش در اعضا بیشتر میشه شکار کنید تعادل کلسیوم و فسفر در بدنش ایجاد کنید یک داروی موثره فوری این بالاست حالا شما داروی بهش بده که فسفارش بیاد بالا تعادل عادل فسفارش و اون چیه موامنا؟ دو چیزه یکی مغزه گردو روزی چند تا مغزه گردو به جوه بخوره دوم چیه؟ گوشت میگو که روایات شیعه میگو خوراکی ها اصلا نستخاص داریم که حلاله تو بحث سخت پوستان دریایی میگو حلال خوردنش گوشتشو بخوریه هم مثل مکعن مستطیله رنگش مایله به صورتی خب معلومشون مومن چی گفتن؟ سرشار از فوسفوره درستد فسفر یک کم میبرن بالا تا تعادل کرسیوم و فوسفور بشه بعدن همجور به تناسب هر دوشو کم کم کم میکنن این هم مومن ها مالی مطلع. یک سوال دیگه بسیار مهمه داخلی و خارجی خیلی سوال میکنند کنن و اون اینه که رفته آزمایش خون گرفته کراتین خونش بالاست مثلا کراتین خونش باید یک و نیم دو باشه اومده شیش هفت پزشکی جدید اینجا دارو نداره به مریض میگه التماس دار ما چیزی نهانیم آیا میتونیم با پزشکی اسلامی کراتین بالا کراتین یعنی فسفات ازوته که اگر کاهش پیدا نکنه گلومورول های هشلوب کلیه شروع میکنن به پوسیده شدن کلیه های شخص کار میفته محتاج به دیالیزمش حالا میتونیم کراتین خون رو که فسفات ازوتست بیاریم پایین بله بله به متخصصای اورولوژی. و فوق تخصصای نفرولوژی حتما اینایی که میگن بگین مامان ها ثواب دارد هم اگر دیرین آزمایش خونش کراتینش بالاست به این عمل کنه به 20 روز کراتینش میاد دو دوانیم به 20 روز حالا عروب توضیح میدم برای کاهش کراتین بالای خون یعنی همون فسفات از دوته. مثلا از هفت و شیش برسونیم به دو دوانیم ظرف بیست روز به مدت بیست روز پرهیز مطلق داشته باشد هیچ خوراکی و آشامیدنی نخوره مگر اینی که آنها میخوام توضیح بدم. فقط اینهایی که گفته میشود که شیش چیزه مصرف شود یک در بیست و ساعت چهار لیوان آب سید و شراب فی الدنیا و الاخره دوم نوشیدن آبجوش ولرم چار لیوان تو بیس چار سعر شیعان صالحان للبدن ماء الفاتر و الرمان فرما شد امام صادق علیستان بحار به شست حالا این آب و همچنین آبجوش ولرمش و کم کم با عسل کوهی بخوره ان العسل شفاء من كل سم مستدرک محدس نوری جله 16 قال الصاد با علی さん مطلب سوم پس این آب و آب شو با عسل بخوره تو 24 ساعت دو قاشق فلخوری عسل اما خورد خورد یواش یواش سوم سیب درختی رسیده شیرین را با پوستش آبش بگیره روزی یک لیوان وسط روز آب سیب اینطوری بخوره سیب ترش نباشه سیب نارس یا نیم نباشه سیب رسیده شیرین روز... که با پوستش آب بگیری وسط روز یک لیوان بخوری مطلب 4 شبها قبل از خواب یک قاشق مربو خوری سیاه دونه با یک قاشق پلو خوری اصل کوهی به جوی و بخوری اصل کوهی ها الوان مختلفه نه اصل خاص نه اصل خاص اصل کوهی که از شهد گل های رنگارنگ غیر سمی زنبور عسل تهیه کرده اصل کوهی یک کاش مرربخوری سیاه دوونه یه قش پلوخوری پنج. مطلب پنجم هر روز تو 24 ساعت یک ساعت پیاده آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشه. مثل تپه نردی کوه نردی ولی شیبش ملایم باشه. در هوای آزاد نه تنها 20 واحد قند خونش میاد پایین. کراتین خونش هم کم میشه خیر ما تداویتم بهی الماشی خدا رحمت کنه علامه مجدسی یه روایت در بهار آورده مطلب شیشان عصرانه هر روز یک انار شیرین یا دو تا انار شیرین رو با حساش بجای بخوره پس به مدت بیس روز خوراکی آشامیدنیش فقط این شیشتایی باشه که شماردن ظرف 20 روز کراتینش از هفت و میاد به دو و, دو و نیم. پیش هر متخصص اورولوژی و نفرولوژی داخل خارج کشور دوست داری برو یه از باش خون بگیه بهش نشون بری تعجب میکن بعد بهش سلام این جوجه هز زرار برس بگو اینه بگو به مریضات بخونن آیه یعص نگو برو که خوب نمیشی دارو نداری از این جو نگو اللهم انسان آمان